جلسه 49 و سم. جلسه 49 قواعد و سیاستم دهم اردیبهشت 1401 الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله علی و سیدنا و نبینا محمد و علا اهل بیت طاهرین المعصومین معصومین سیام و بقیه روحی و ادبا خلال عالمین با ترکل و خدای متعال و تسلیل در بر گرامی و اهل بیت اتقال علیه السلام. سلام بحثی که ما داشتیم در مد قوائد معرفی و تدمین برخی قوائد بود و توضیح که در مد هر کدام میدادیم تندقل برای مرحله آنشنایی من شما حرز کنیم یکی از قواعد یکی از یکی از قواعدی که داریم برنان قواعد تقدیم المسلحت الجوهریه بر المسلحت شکلیه این تعبیر است که در فضای معاصر هم بکار میره ما این قواعده اگر رو خواهیم تحلیل کنیم و بشناسیم نیازمندیم که ونی مسئله‌های جوهری چیز، مسئله‌های شکلی چیز، خب مسلحت جوهری در واقع مسئله‌هایی است که ناظر این مفهوم ناظر به اون مسلحت اساسی یک حکم، ناظر به خلاصه اون محور شکلگیری و جعل یک حکم. اما مسلحت شکلی مربوط به کیفیت اجرا آیننامه های بگیم حالا به تغییر معاصر آینامه اجرائی و نحوه تحقق بخشی اونه در واقع شما یه موقع میگید که این کار یک اصل مسلحت رو دارید میگید اصل فعل رو دارید میگید این حکمت یا علت جعل این حکم چیست اون مصالحی که برانگیزاننده شکگیری حکم بوده اون چیه در واقع به خاصگاه به مصالحی که اساس برانگیزاننده شاره برای برای شکل دهی و جعل یک حکم خب این موارد یه تفاوتی داره اما مسئله شکلی شما میخواید یک کار رو شکل بدید اینجا مثل اینکه که مثلا یک سربازی رو شما یک جا میگمارید میگید که شما باعث اینجا از این محووته که ما سیم خاردار کشیدیم شما بیا سیانت کن اگر به او بگید که هدف و مصلحت کار چیه اون براش کار شفاف میشه یه موقع بهش میگید سندلی بذار این سندلی گذاشتن یا این که توی برج مراقبتی بشین یا میگید شما بیا استتار بکن یا مثلا ساعت فلان بیا اینا اون موارد است که در واقع مربوط به اون نحوه اجراست اینجا شما دنبال چی هستید دنبال این هستید که بیایید بگید که اصل ماجرا چیست خب یه جایلا تزاهم میشه بین این مقوله هایی که در واقع در امری با هم تنافی پیدا کردن شما میگید که یکی اصل کاره یکی شکل کاره طبیعتا مسلحت جوهری هر حکم مقتضی سیانت از اون و تلاش برای تأمین و دستیابی به اون شما یک حکمی دارید اون حکم همینطوری جعل نشده هر حکمی ناظر به در واقع مساله ای، جل شده است که مقتضی امتصال اون حکم خواهد بود خب شما یه جایی میایید آید می که این حکم تنافی پیدا کرده با شکل اجراش خب اون شکل اجرا یه مقاله دست دومه شکل امتصال در واقع رتبتن متأخر از اصل حکمه و مصلحت مختزی اونه. شکل انتصال در واقع مساله شکلی مساله شکلی یعنی چی؟ مساله مربوط به کیفیت اجرا اینها رتبتن متأخرند. جایگاه خاصی داره خب که که نمیتوانه بر اصل مصلحت حکم و به تعبیر دیگه مصلحت جوهری اون حکم مقدم بشه شما یه جای میاد میگید که آقا مثل این مثالهای عرفی شما میایید میگید ما میخواهیم ازدواجی رو رقم بزنیم میایید میگید که در ازدواج بیایم عروسی بگیریم مراسم بگیریم خب اینجا شما اصل پولتون رو به جایی که بیایید صرف خلاصه صرف مخارج اصلی بکنید برای زندگی در واقع صرف, صرف کردن درآمد برای اصل ازدواج بر کیفیت مراسم ازدواج این مقدمه خب اینجا شما اگر بگید که من میخوام یه منزل بگیرم شما اون پول رو برید خرجش بکنید نتوانید منزل بگیرید مسلحت جوهری در مقوله ازدواج به تشکیل زندگی برمیگرده اما اگر حزین تراشی خلاصه به قصد مساله فرعی و حاشیه‌ای خلاصه بخواب برگرده شما می‌خواد اینا مصلحت داره مصلحت داره که شما مهمانی دعوت بکنید مساله فرعی و حاشیه‌ای بخواب پرداخت شود این نتیجهش چیه گاهی منجر به تعویق ازدواج یا دشواری تعویق یا حتی یا انتفاع ازدواج برمیگرده شما کدام رو باید ترجیه بدهید خب اصل کار شما میخوایید برید در میال مثال سیاسی دفاعی شما میخوایید حزین کردن موارد محدود سرمایه های محدود برای دفاع نظامی بر تبلیغات غیر مؤثر مؤثر ترجیح داره حالا در مواردی که تبلیغات تبلیغات جنگ منجر به جذب و افزایش نیروهای نظامی برمی‌گرده اینجا شما می توانید میتوانید بگید که در واقع این حزینه اینها حزینه مذکور برای چیه؟ برای تقویت اصل دفاع و دفاع نظامی است چرا؟ چون که تبلیغات داره کمک میکنه که شما نیرون نظامی رو تقویت کنید ببرای جنگ جنگ پیروز بشه اما در برخی از موارد تبلیغات تأثیری در اصل دفاع ندارد یا تبلیغات یا خلاصه شکل‌های خاصی از تبلیغات تأثیری در اصل دفاع نداره بلکه مثلا در خدمت قیافه گرفتن صرفاً به درد خلاصه در راستای حفظ مثلا موقعیت و آب روی نظامی است اینجا کدام ترجیح داره در این صورت ممکن است امکان داره که در واقع صرف حزینه های مزبور در چنین تبلیغاتی به شکست نظامی بیانجامه بنابراین در این صورت باید شما چه کار کنید؟ ترجیح دارد که هزینه های مزبور برای اصل دفاع استفاده بشه خب شما حق ندارید به هزینه ها ها به پردازید خلاصه یا شما میگید که آقا من اگر بیام مثلا این هزینه رو به جای اینکه تعمیر ماشین کنم خب تعمیر در واقع تعمیر یک دستگاه یک وسیله بر تزیین اون ترجی داره خب این یه مثال عرفیه. بنابراین اگر میخوایم تطبیخ کنیم این موارد رو ما میتوانیم پیدا کنیم حالا ممکنه به که آقا این خبیه امر روشنیه اما طبیعتا مثال های فراوان می توانیم پیدا کنیم هر قاعده نمونه های فراوانی برای تطبیق داره که برخی از اونها در واقع از موارد روشن و شف از موارد خلاصش روشن هستند و ابهامی در کیفیت پیاده سازی اونها تطبیق اونها چندان وجود نداره اما خلاصه توجه به این نمونه ها میتوانه راه بوشای ما در تطبیق برخی موارد باشه برخی از موارد پیچیده باشه خب نکتش چیه؟ اینه که خلاصه به تعبیر دیگه میتوانه توجه به قاعده ترجیح مزبوری که ما گفتیم ترجیح مساله جوهری مسلحت جوهری بر مساله شکلی خلاصه کمک بکنه نیازمند گاهی و در مصادیق مختلف ساده و پیچیده است ببینید الان ما گاهی و میگیم ساده است ولی در پیاده سازی دو چهار هم مثال ازدواج خب اینجا شما ای، این حرف رو همه قبول دارن ساده بودن این مثال به این معنا نیست که که مردم مردمی که درگیر با این مصداق خاص هستند حتما اه خلاصه اصل ازدواج رو بر کیفیت ازدواج ترجیح میدندند الان شاهدش چیه؟ نمونه های زندگی عادی نشان میده در واقع این ملاحظه خلاصه آسیب شناسانه نشان میده که ما دوچار این موزل هستیم جامعه اسلامی نشان میده که ما همچنان خلاص با این مثال ساده دست بگیر گریبانیم علت این مسئله چیه؟ اینی که ما که مردم مسلمان در واقع اولویت‌های پنهان و پیدایی برای خودشون دارن که باعث میشه این ترجیح رو این وجه ترجیح رو اعمال نکنند. به طور نمونه شما شاهد این هستید که ما حفظ در واقع تلاش برای حفظ آبروهای توهمی حفظ تلاش برای حفظ موقعیت اجتماعی یا خلاصه دیگر موارد معیارهای پنهانی هستند پنهان یا بگیم حتی آشکار نمیشه این رو بگیم پنهاره پنهار آشکاره مؤثری هستند که که مردم در زندگی خود اونها رو دخیل می کنند و در نتیجه این ترجیح مضبوط به سادگی خلاصه اعمال نمیشه پس این مقوله خاصیه منطقه این خارج از بحث ماست ما با این کار نداریم ما مهم این برامون هست که شما این مقوله رو در نظر بگیریم حالا ما هر مقدار بطمید در مثالهای سیاسی من از مثال ساده شروع کردم تعمیر وسیله یا ازدواج مقوله ازدواج با کیفیت مرسم خب حالا گایی ما می تو مقوله های سیاسی این مقوله تبلیغات غیرمؤثر یه مقوله ای. یا میایم چیکار چی کار می اصل رو در اون مقوله های سیاسی چنان پررنگ می که اون مثلت جوهری زیر پا گذاشته میشه مثل چی؟ مثل در مثال های سیاسی پررنگ شدن مساله مربوط به مساله مربوط به کیفیت انتخابات در کشورهای اسلامی می بایست در مقایسه با اصل مصلحت مربوط به انتخابات مورد بررسی قرار بگیرد خب، یه جاهایی ممکنه اینقدر مسئله سنجی بکنیم اینقدر پیرایه براش درست بکنیم گاهی حزینه های به تبلیغات انتخاباتی بر اجرای صحیح انتخابات سایه می اندازه خب، در صورتی که باید که باید حزینه های مزبور برای سه اجرای صحیح انتخابات خلاصه حزینه بشه خب موارد زیادی و هر حال توی این مثال های سیاسی ما ببینیم کدام از این نمونه ها خلاصه اصل کدام حاشیه است اصل مصورت مربوط به انتخابات چگونه است خب، شکل های مختلفی ما توانیم داشته باشیم خب، این ما یه رفت و برگشتی داریم بین این تطبیقات و تحلیل وچه ترجیح یعنی یه اشاره کردیم به وچه ترجیح یه تطبیقات حال ساده اشاره کردیم که یه رفت و برگشتی پیدا کنیم. اون مهم برای اون تحلیل وچه ترجیحه حالا مستندات شرعی ریز اونها جای خودش، دیگه بخواهیم هر قواهیدار رو پردازیم باید, باید استقرار خیلی تام میبشه اما من می‌خوام از کنم که تصویر مسئله رو ما اگه خوب بکنیم در واقع یک نوع استدلال تحلیل موضوع شناسان است تحلیل موضوع شناسانه در واقع انواع مسائل میتوانه به خلاصه بیان به تحلیل وجه ترجیح خلاصه بیانجامه به چه معناه؟ شما اگه ماهیت جو... مسلحت جوهری رو بشناسید میبینید چه جایگاهی داره به تعبیر دیگه شناخت واقعیت مسلحت جوهری و مسلحت هاشیعی که بهش میگیم مسلحت شکلیست به مسئله شناختی مسئله اینها و تمایز در واقع تمایز میان این دوتا یه کمک جدی می‌توانه به ما بکنه این شناخت این دو و در نتیجه ما تلاش برای شناخت تمایز میان اونهاست که می توانم در واقع منطق ترجیح رو در میان اونها نشان بده و خلاصه کشف کنه مصلحت جوهری کارش چیه مقتضی سیانت از یه بحث من یه مثال کنم در اون فضایی که مناط تزاحم حفظی داره شهید صدر هر مسلحتی در واقع هر مسلحتی اقتضایی داره مهمترین اقتضای بگیم در حد الی حالا اونو جدا از میکنیم در حد علت باشه یا در حد حکمت اقتضای هر مصلحت تلاش برای دستیابی در واقع بر تامین برای تأمین اون مصلحت از طریق اجرای حکم مرتبط با اون حکم مصلحت اون حکم برامده از اون مصلحت است این اقتضا در واقع این مصلحت ببخشید این مصلحت میتوانه تاثیری علت گونه داشته باشه یا حکمت گونه باشه اون یه بحث دیگه است تأثیر علت گونه یا حکمت گونه در جعل یک حکم تأثیر به خلاصه خاصیه اما در هر صورت اختضای مزبور باید رعایت شود خب در واقع به تعبیر دیگه مصلحت مزبور با اون مسلحت شکلی کاری نداره مقتضی امتصال خلاصه حکم برآمده از اون به نحو مطلق مصلحت شکلی چی؟ در حالی که مسلحت شکلی برامده از در واقع اقتضاعات سانوی اون مسلحت جوهریست خب مسلح هر حکم یک اقتضاعی داره بنابراین اون مسلحت اصلی نیاز به اصل کاره به مطلق و ناظر به امتصال اصل اون حکم در حالی که مصلحت شکلی هر چند برآمده از مسلحت در واقع خود اون مصلحت اصلی است مصلحت شکلی برآمده از مصلحت قلسی ش... اون اصلیه ولی مسلحت شکلی در واقع ناظر به در واقع اینطوری بگیم صرفا به مصابه اقتضای ساندیه یک اون مصلحت جوهری است خب این پس تفاوت داره بنابراین این امر میتوانه خلاصه تبین کننده تفاوت و تمایز این دو مسلحت باشه و این دو مسلحت هم تمایز دارند هم اینکه جایگاه رتبی اونها رو خلاصه میتوانه تبین بکنه و در نتیجه مصلحت جوهری یک رتبه مقدمه و در نتیجه ما می‌بینیم که اصلا اقتضای این دوتا تفاوت داره در مجموع تفاوت جایگاه و خاصگاه هر یک از این دو مصلحت نشان دهنده خلاصید اینه که کدام باید ترجیح پیدا بکنه رتبه مصلحت جوهری مقدمه رتبه در واقع تقدم رتبی مصلحت جوهری بر مسلحت شکلیست خب. حالا اینجا ممکنه یه بحث دیگه هم داشته باشیم و اون چیه؟ در برخی از موارد مساله شکلی می توانند در واقع با مساله مستقل جوهری نیز همراه شوند و ترکیبی از مساله شکل بگیره در این صورت پیچیدگی بیشتر میشه. کچی دیک در واقع شناخت ترجیح نیان اونها مختضی اینه که ما ببینیم سبک سنگین بکنیم موازنه بین مجموعه مسائل خواهد بود خب این قسمت میتوانه به ما کمک بکنه پس ما اگر خواهیم ببینیم یک مسلحت برام یکی مقدمه واقعا باید تحلیل کنیم اگر یک جایی امکان تطبیق نیست امکان ترجیح نیست اون رو بشناسیم در راقه در این صورت خلاصه در این موارد ما ممکنه مواردی پیدا کنیم در نتیجه برخی از موارد به لحاظ سنگینی مساله جوهری همراه با مساله شکلی مقتضی ترجیح این گزینه از طرف خلاصه است که شکلی هستند اما این مورد خلاصه به خاطر ذات اون ماهیت مصلحت شکلی نبود که بر مصلحت جوهری تقدم داشته باشه یه واسه بلکه اقتضای در راقه موازنه دو مصلحت جوهری بود که در کنار حضور یک مسلحت شکلی خلاصه وزنه یک طرف رو اون طرف دوم رو سنگین کرد این مقوله مستقل بود